البته تقابل با رهبری باره که چشم باز کردم هوا کاملا تاریک شده بود آیا همه اینها را در خواب دیده بودم؟ صدای غریبه ای از اتاق دیگر می آمد بلند شدم و به آنجا رفتم رفیق نقی آمده بود و با نیما و علی مشغول صحبت بود از خود پرسیدم چرا منو دار نکردن؟ رفیق نقی شما کی اومدید؟ دو ساعتی میشه، گفتن ناخوشی صدات نکردن صفره هنوز پهن بود اما هر نفر از آن دور نشسته بودند انگار که قضا خورده باشند نقی با خودش کتاب آورده بود از میانانها نبرد با دیکتاتوری شاه نوشته بیژن جزنی را شناختم ایما سفره را به سوی من کشید چیزی میخوری؟ دلم مالش میرفت نقی اشاره کرد اینا رو بخونید بازم کتاب های اتیمای دیگه براتون میارم علی کتابی را ورق می زد. نیما لیوان چای بزرگی جلویم گذاشت که تا نیمه از شکر پر بود. آن را سر کشیدم. چای شیرین و داغ. وارد معده و سریع وارد رکهایم شد و حالم را جا ورد. نیما چای دوم را ریخت. رفیق نقی گفت تیم شما با تر سوال مشخص کتاب میخونه. این خیلی خوبه. تو تیمای دیگه هم کم و بیش بحث خوبی شروع شده. سازمان تصمیم داره تو هر تیم یه رفیق و که بر مسائل تئوریک تسلط بیشتری داره سازماندهی کنه تا به بحث‌های رفقا بار بیشتری بده. تعداد این رفقا زیاد نیست شاید مجبور باشیم که اونا رو تو تیم‌های مختلف بچرخونیم. سازمانو دوباره باید سر پا بیاری. پیش علی درست از آب درآمده بود. زبان رفیق نقی تغییر کرده بود. باور نمیکردم که این، همان رفیق است که بار پیش با ما دعوا کرده و ما را از اخراج ترسانده بود. از اینکه پیشگوی علی درست از آب درآمده بود خوشحال نبودم. درست بودن حرفهای علی به معنای ضعف رهبری سازمان بود. رهبری ضعیف آن اعتماد و امنیتی را که نیاز داشتم به من نمیداد. دوست داشتم کسانی در رهبری باشند. که بتوانم با آنها اتکا کنم، باور کنم که راه صحیح را تشخیص می دهند. همیشه باور داشتم که رهبران بهتر می و تصمیمهای درست تری می گیرند. در این حس شکافی امیغ افتاده بود. رفیق نقی با علی درباره کتابی صحبت می کرد. نمی توانستم حواسم را روی یک موضوع جمع کنم. هر بار که می خواستم بر بحثی متمرکز شوم، چهره بهمن در نظرم ظاهر می شد دلم می خواست تلافی کنم به حرف خود رفیق نقی را به خودش برگردانم و بگویم رفیق چی شد که نظرتو عوض کردی همین چند روزه به این ایده های جدید رسیدی از او به خاطر رفتار دوگانش عصبانی بودم نقی پرسید رفیق شیرین حالت بهتره؟ چیزی نیست این چند وقته چه کتابای خوندی؟ چه بحثایی داشتین؟ یکم تعریف کن. هر چه فکر کردم نتوانستم موضوعی را به یاد بیاورم. ذهنم یاری نمی کرد. همه نیروی فکریم دور چهره بهمن تمرکز یافته بود و از هر دری که میرفتم به تصویر او برمیخوردم چه باید در جواب می گفتم؟ مطالعات تیم ما تعطیل شده بود و مدتها بود بحثی میانمان در نگرفته بود. ذهنم خالی از هر بحثی بود. انگار افکارم را به همراه مواد درون میدم بیرون ریخته باشم. بی جواب دادم، مریض بودم، توی هیچ بحثی شرکت نکردم. قبل از مریضی چی خوندی؟ چرا او به من بند کرده است؟ نکند از سراحت و زبان دراز من با خبر است؟ یا مرا از همه ساده تر می انگارد؟ علی به دادم رسید. کتاب رژی را رو خوندیم. درباره کودتای بیست و هشت مرداد و شرایط عینی انقلاب حرف زدیم. این بار رفیق نقی برعکس دفع قبل، با تیمی که با شوق مطالعه کرده و با شور پرسش‌های جدی طرح می‌کرد مواجه نبود. نقی با گوشه سبیلش بازی می‌کرد، در انتظار توضیحات بیشتر بود اما علی جمله‌های قبلی را تکرار می‌کرد. درباره کودتا و شرایط عینی و بحثهایی که اون زمان بود. نگاه رژی دبره درباره شرایط عینی. نیما هم برعکس دفعه قبل به جای سوال کردن تنها جواب های نقی را میداد. رفیق همون بحث های قبلی رو ادامه دادیم و به شرایط عینی انقلاب رسیدیم حالا کتاب بیژن جزنی رو که آوردیم میخونیم و میتونیم بیشتر بحث کنیم به چهره نقی خیره شدم از ذهنم گذشت بحث کنیم؟ درباره چی؟ آیا میتونستیم کتاب بیژن جزنی رو دست بگیریم و به بحث و گفتگو راجب مسائل سیاسی مشغول بشیم؟ و فراموش کنیم که چه بلایی سر رفیق بهمن اومده؟ آیا مرور زمان به همین سادگی بر این اتفاق رنگ فراموشی می پاشه؟ یا زهر این اتفاق تا آخر عمر با ما میمونه آیا بعد از این کسی جورت میکنه در سازمان عاشق بشه؟ شیرین می دونی لیست کتاب ها کجاست؟ سوال نیما مرا به خدا برد. افکارم رشته های بودند که فاصله های میانشان خالی بود. لیست کتاب های تیم را که به دستش میدادم دادم لحظه ای به چشمانم خیره شد. با نگاهش فهماند که نگرانم است. نگاه دوست داشتنیش منقلبم کرد و ترس فاش شدن رازم مرا لرزاند. به سرعت چشم از او گرفتم. نیما لیست کتابها را جلوی نقی گذاشت و چیزهایی از او پرسید. از کوششی که برای پر کردن فضای گفتگو می کرد ممنون بودم. علی سر را پایین انداخته بود و کتاب بیژن جزنی را ورق می زد. نه حرفی می و نه به حرفی گوش می داد. در لحن صدای ما چیزی بود که نقی آن را گرفته بود حرفی داشتیم اما نمی زدیم. دوباره رفیق نقی خودش شروع کرد یک سال از زربات میگذره حالا باید خودمون آماده کنیم تا وقتی دانشگاه باز میشه نشون بدیم که فدایا هنوز هستن و فعالیت میکنند آهنگ صدایش مهربان و مسئولانه بود اگر یک ماه پیش با همین شیوه در بحث شرکت میکرد می, کرد، می با او هم صدا شوم اما حالا همه چیز به کابوس شباهت داشت هنوز از خود میپرسیدم که چرا نباید صریح و روشن از رفیق مسئول بپرسیم و او را به جواب باداریم. همیشه فکر میکردم سازمان تنها جایی است که میتوانم هر چرا که در دل دارم با خیال راحت بر زبان آورم در میدم چیزی میجوشید دهان باز کردم تا بگویم پس چرا شما مرتبه قبل با ما تند برخورد کردید اما با صدای لرزانی که انگار از ته چاه در میآمد گفتم رفیق نقی درسته که رفیق بهمن توی سازمان کشته شده؟ چطور این جمله از دهانم بیرون آمد؟ قصد گفتنش را نداشتم زبانم تات نمی کرد. شاید هم لحن مهربان نقی بود که مرا به گفتن این جمله واداشت. نیما و علی نیمخیص شدند نقی تکان مختصری خورد انتظار این پرسش را آن هم در میان بحث سیاسی و در آن فضای دوستانه نداشت. از ذهنم گذشت چرا نباید بپرسم؟ علی حیران و ناباورانه به من چشم دوخت اما صدای از آنها در نیامد. راه بازگشتی نبود. پره های دماغ نقی و بسته شدند. صدایش را بالا برد و با تحکم پرسید. کی به تو اینو گفته رفیق؟ خراب کرده بودن. پرسش نقی چون پتکی کوبنده بر سرم آوار شد و تکانم داد خود را سرزنش کردم بازمین زبون لعنتی نیما با نگرانی نگاه از من گرفت و به زمین دوخت الان بود که نام او برده شود اما من که با شیوه بحث نقی آشنا شده بودم میدانستم که او به جای پاسخ گفتن پرسش را با پرسش دیگری برمیگرداند. خشم، بغز و نفرتی که این یکی دو روز در منم باشته شده بود به من انرژی بیشتری داد تا به شیوه خودش به او حمله کنم. درد معده و دلاشوبیم هم, هم به کمک خشم آمد. کم مانده بود تا وسط و اتاق سفراخ کنم. با صدایی بغزالود و لرزان گفتم پس خبر درسته؟ عفیق بهمنو سازمان زده؟ اینکه نقی مرا آدمی ساده مینگاشت، اینکه میخواست از آنچه سادگی من میپنداشت بهره گیرد، مرا عصبانی کرده بود. سرم داغ شده و بیش از ظرفیت خون به کلم هجوم آورده بود. در فکر آن بودم که چگونه حمله بعدیش را خنسا کنم که برخلاف انتظارم صدایش را پایین آورد و آرام گفت: رفیق، این حرفا کدومه؟ پاهایش را جمع کرد. روی آنها نشست و به دیوار تکه داد. ته پاکت سیگار را چند بار بر رانش کوبید تا سر سیگاری بیرون بیاید. آن را با انگشت گرفت به دهان برد و روشن کرد. پوکی عمیق زد و دود آن را مانند آهی بلند بیرون داد. خیلی شمرده گفت. رفقا شما که می سازمان در چه وضعیه فقط یه قدم تا نابودی فاصله داشتیم. تمام کوشش ما باید بر حفظ و ادامه کاری سازمان باشه بار سنگینی بر دوش همه ماست باید با احساس مسئولیت و همدلی کامل وظایف اونو انجام بدیم. سازمان به کمک تک تک ما نیاز داره هنوز خیلی مشکلات پیش رو داریم رفیق نقی از مشکلات سازمان می گفت و می گفت در گفته هایش هیچ نکته تازهی نبود چنان در خود غرق بود که متوجه خاموش شدن سیگار و ریختن خاک سرش بر زیلو نشد. علی سرش را پایین انداخته بود و خطهایی بر کاغذ می کشید. نیما به دیوار زده بود. شاید هم باز شعری را در وصف موقعیت به یاد آورده بود. تنها کسی بودم که با دقت به چهره و چشمهای رفیق نگاه می کردم. ببینم آیا خودش با میگوید باور دارد یا همه را تنها برای ساکت کردن ما میگوید میخواستم بدانم آیا برایش پیش نیامده که دختری را در خانه تیمی دوست بدارد یا حتی ببوسد رفیق نقی هنگار با خودش درد و دل میکرد یا میکوشید خود را قانع کند از ته دل حرف میزد هنگار که مدتها با آنها کلنجار رفته است اما پاسخ سوال من در میان گفته هایش نبود تلاشوبی همانم نداد به سمت توالت دویدم اما نرسیده به آن در راه رو برگرداندم چیزی در میدم نبود جز چای شیرینی که اکنون تعم تلخی داشت به حیات رفتم تا آبی به صورت بزنم خونکی مطبوع آب بر پوستم نشست سینم را از هوای خونک شب پر کردم از حیات کناری صدای گپ و خنده و بوی مطبوع قضا می آمد. وقتی برگشتم نقی آماده رفتن بود گفت رفیق به زودی میام و با همدیگه بیشتر حرف میزنیم. نیما رفیق نقی را برد. دستمالی آوردم تا راه رو را تمیز کنم. دستم میلرزی. نیرویی در پاهایم نمانده بود. گوشه راه رو بر زمین نشستم و عشقایم سرازیر شدند. چرا نمیتوانستم مانند دیگران با حساب و کتاب حرف بزنم. پیش نیما خجالت میکشیدم. حالا علی می دانست که با نیما حرف زدم. نیما هم دیگر به من اعتماد نمیکرد. از کاری که کرده بودم سخت پشیمان بودم. علی آمد و دستمال را از دستم گرفت و راه رو را تمیز کرد. نگاهی به من انداخت و گفت به نیما گفته بودم که به تو حرفی نزنه. نمیخواستم پای نیما به میان کشیده شود و همه کوزه ها سر او شکسته شود. با قیز گفتم نمیفهمم تو چطوری میتونی ساکت بمونی بابا جان رفیقمونو تو سازمان کشتن تو ایراد میگیری که من چرا سوال کردم خونسرد گفت خب حالا جوابتو تو گرفتی عصبانی جواب دادم نه اما هیچی نگفتن و به روی خود نیاوردن از کار منم بدتره نفس عمیقی کشی داسمار را گوشه انداخت و به داخل اتاق رفت بی تفاوتیش بیشتر عصبانیم کرد دنبالش به اتاق رفتم نمیتونم فکر کنم که رفیق بهمن کشته باشن علی نشست و کتاب را که نقی آورده بود جمع کرد مگه تو میشناختیش رو به نشستم پشت به دیوار پاها را در بغل گرفته گفتم دیده بودمش چجور آدمی بود؟ شانه ها را بالا انداختم نمیدونم مگه مهمه یه رفیق بود هر کاری کرده نباید میزدنش علی سرش را بلند کرد و گفت خب اینو که منم قبول دارم اما میگم هر چیزی سر وقتش حرفو اگر به وقتش نزنی نتیجه عکس میده همین حرف امشب تو کار و بدتر کرد کتاب ها رها کرد و به نقطه خیره ماند اصلا ممکن است هم جدامون کنند با نگرانی پرسیدم چتی چشم در چشم من دوخت و با حرص دستش را به سمت من دراز کرد بعد دو ماه پیش به نیما و تو میگم که یک کمی سبر داشته باشین حرفاتون بلند بلند نگین کم فرصت داشته باشیم اما تو از اون بدتر اون از تو بدتر سرزنش های علی احساس گناه درونیم را چند برابر کرد دیگر نمیدانستم چی درست و چی غلط است نیما که بازگشت من در یک طرف اتاق سر را بر زانو گذاشته بودم نیما پرسید حالت بازم بد شد؟ چه باید میگفتم دلم میخواست بگویم نیما معذرت میخوام اما زبانم قفل شده بود و کلمات در درونم با هم درگیر بودند. نیما انگار فکرم را خانده باشد گفت خوب کردی گفتی هرچی خواستم بگم دیدم شجاعتشو ندارم. علی سر بلند کرد و با تمسخر گفت گفتن این حرف چه شجاعتی میخواست؟ بگو پت تو شیرش کردی. نیما نزدیک علی نشست. گفت قبلا هم گفته بودم که باید این مسئله رو تهر کرد هر چیز زودتر بهتر اما تو مخالفت کردی حالا شیرین گفت رفقا بالاخره باید یه جایی به ما جواب بدن جواب جوابش همین بود که شنیدی بز بهت جواب بدم یکی یه حماقتی کرده حالا باید همه بدون تا این خرابکاری رو درست کنن فهمیدی نیما هم صدایش رو بالا برد همینو باید بگن فهمیدی نمیشه همه چیز زیر رد کرد حس می کردم چیزهایی می دانند که از آن بی خبرم جریان چیه؟ به منم بگید کی حماقت کرده؟ واقعا زدن بهمن خاطر چی بوده؟ فقط علاقه به یه رفیق دختر؟ علی به من و بعد به نیما نگاه کرد شاید فکر می کرد نیما بیشتر از آن به من گفته باشد آرام و با لحنی دو پهلو گفت تنها علاقه نبوده رابطه بیشتر از اینا پیشرفته بوده بدون آن که نگاه کند؟ و آرامی این جمله را گفت کنایهای در آهنگ سادایش بود که آن را حس کردم با صدایی که سعی در کنترلش داشتم پرسیدم یعنی چی بیشتر بوده؟ علی سر پایین انداخت و گوشه لبش به لبخندی باز شد اما لبخندی نزد نمیفهمیدم چرا عصبانیم شاید علی میخواست با این لبخند به من بفهماند که موضوع از چه قرار است و مرا از میدان در کند شقیقا با شدت شروع به زدن کرد گفتم میخوای بگی رابطه جنسی داشتند ابروهای علی بارا رفت و چشمانش گرد شد انتظار نداشت اینقدر سریح این واژه از دهانم خارج شود خودم هم بعد از شنیدن صدایم تعجب کردم از ذهنم گذشت دختر دوباره زبونتو نگه نداشتی یاد دوستم آزر افتادم که به اعتراض می گفت چرا خجالت می کشید استلاح رابطه جنسی را به کار ببرید آری خجالت میکشیدم چرا نمی دانستم با آزر گفته بودم آزر جان تو چند سال خارج زندگی کردی حق بده به ما که نتونیم برخی کلمات راحت به زبون بیاری. او هم سریح جواب داده بود اگه قبول داری خب اسم درستشو به کار ببر اگه نداری هیچی نگو حرفشم نزن. و حالا این عبارت را به کار برده بودم شاید برای از میدان به در بردن علی حسی مرا در مقابل او قرار میداد از اینکه خودش را بالاتر و موهقتر از من و نیما می از اینکه برای همه سوال ها جوابی داشت و از اینکه به ما مثل ادم های کم فهم نگاه میکرد عصبانی بودم به خود جرأت داده گفتم مگه برای تو فرقی هم میکنه مثلا اگه فقط علاقه بود اشکالی نداشت اما مجازات این یکی مرگه علی با دهانی باز نگاه هم کرد سیبک گلویش از قورت دادن آب دهان بالا و پایین رفت و گفت نه اینو که نگفتم من هم کشتن و قبول ندارم مکس کرد بحث به بد جایی کشیده شده بود نیما ابروها را در هم کشید حس کردم اینجا دیگر پشتم نیست با چشمهایش میگفت حالا چه وقت این حرف هاست؟ دستم را مشت کرده بودم تا لرزش آن دیده نشود. تمایلی به ادامه بحث نداشتم. اصلا نمیدانستم که چطور و چرا وارد این مقولات شده بودم. گاهی بحث خودش راه می رود و آدم را به دنبال خود می کشاند. دلم می خواست اتفاقی می و بحث و مجادله ما خود به خود قطع می شد. علی مثل معلم های سر کلاس درس، آرام و شمرده گفت اول باید فهمید چی شده؟ اصلا شاید موضوعات دیگه ای مطرح باشه. باید دید اونا که این رابطه جنسی رو محکوم می کنند چه منطقی دارند؟ ببین در جامعه اینکه کسی کسی رو دوست داشته باشه تا اینکه باهاش رابطه داشته باشه، زمین تا آسممون فرق داره، او رو تو کوچه ببین میتونی به مردم بگی که دو نفر بدون اینکه ازدواج کرده باشن رابطه دارن ببین کسی قبول میکنه مثلا تصور کن که معلوم بشه همین دختر همسایه با یه پسری بوده ببین چه جنجالی به پا میشه میان حرفش دویدم نمیخواد اینا رو به من درس بدی صفحه حوادث روزنامه پر از اینجور جور خبرها پدری دخترش را کش برادری خواهرش را سر برید ما راجب سازمان حرف میزنیم نه مردم محله علی عصبانی دستش را بالا برد. مگه سازمان آدماش از آسمون افتادن؟ رفقای من بچه های همین مردم یکیشون از کنار مسئله میگذره یکی هم جنجار را میندازه و غیرتی میشه. تو چه تو اینو میگی؟ احضای سازمان جز روشن فکرای این جامند. علی پوسخندی زد. تو میتونی از پاریس اومده باشی اما روشن فکرای ما تو همین محلها بزرگ شدن. یادت رفته؟ حتی تو دانشگاه اگه پسری با دختری دو دفه دیده می شد یارو دختر اگه دختری دوبار بلند می خندید بهش می جلف کجای کاری تو؟ نمی حرفایش را گوش کنم نگاهم را به زمین دوختم و سر را میان دو دست گرفتم علی که دید جوابی ندارم به سمت من خم شد و ادامه داد اگه خود تعریف نکردی که چطور مادر بزرگ دختری رو که تو حوزه حزبی پدرت شرکت کرده بود با جارو خونه بیرون کرد و بش گفته بود فاهشه با تعجب نگاهش کردم علی این داستان مربوط به 20 سال پیشه نه امروز یعنی میگی از اون موقع تا الان هیچی فرق نکرده البته که فرق کرده امروز ماها چریکیم و توی یه خونه با همدیگه زندگی میکنیم به مادر بزرگت هم میخندیم. بی سال دیگه یه دیم دیگه به حرفهای امروز منو تو خندن اما فعلا ما تو این جامعه زندگی میکنیم نیگاه نکن که رژیم جشن و هنر شیراز را میندازه کلوب جوانان درست میکنه ادعای تجدد داره اگه رو بشه که دوتا چریک تو خونه تیمی با هم بودن ببین که چه جنجالی علیه ما را میندازه و چطوری از هر خال پیرزنی صنتی میشه حرفهایش چون تیغی در تنم فرو میرفت از هرس لبم را گاز گرفتم تا جلوی زبانم را بگیرم و چیزی نگویم. علی عادت داشت دیواری از منطق بسازد و پشتش سنگر بگیرد. پاسخی نداشتم و ما چیزی در درونم می گفت که او یک جایی را اشتباه می کند. آخر مگر ما نمی همین افکار عقب مانده را تغییر دهیم. مگر نمی خواستیم بسازیم که دختر و پسر در آن آزادانه بدون آقا بالاسر برای زندگیشان تصمیم بگیرند. اگر این یکی از وظایف ما نبود پس کار کی بود ناتوان از پاسخ سر را بر زانو گذاشتم به مرز ممنوعی وارد شده بودم نشنیده بودم که در سازمان کسی درباره روابط جنسی بحث کند اما مطمئن بودم اگر پوران و سیمین اینجا بودند حتما جواب مناسبی به علی میدادند دلم میخواست بدانم اگر علی جای بهمن بود و عاشق میشد. باز هم اینطور سخنرانی میکرد علی با خودش بلند بلند حرف میزد سازمان باید با رفیق بهمن صحبت میکرد بهشون اختار میداد از هم جداشون میکرد اما زدن رفیق بهمن فقط یه حماقت بود حماقتی محض نیما با اخم نگاهی به او انداخت توی این حماقت پای سازمان و همه ما در میونه به سازمان و ما چه ربطی داره؟ یکی کاری کرده که روح هیچ کدوم اونم ازش خبر نداشته ما هم که علیهشی این چه ربطی به سازمان و ما داره؟ آره این عمل ربطی به ما نداشته ولی اگه سکوت کنیم اون وقت ما هم مسئولیم علی آجزانه به دنبال جلب توافق نیما گفت من که نمیگم سکوت کنیم میگم یکم کم سب کنیم ببینیم شاید خود رفقا طرحش کردند توی حرف علی دویده گفتم صبر کنیم تا یه ضربهی بیاد و همه چو تحت و قرار بده و ما هم یادمون بره. هر دو لحظهی در سکوت نگاه هم کردند. میدانستند که حرفم غلط نیست. چقدر پیش آمده بود که ضربهی سازمان را از مسیر یک تصمیم خارج کرده بود. مگر قرار نبود که سازمان شاخه سیاسی درست کند و حرکات نظامی زیر نظر شاخه سیاسی انجام شود. مگر قرار نبود حمید دشرف را به خارج از کشور بفرستند. تا اینکه رفقا تجربیاتشان را برای دیگران و آیندهگان بنویسند سازمان حتی فرصت نکرده بود تا کارنامه چند ساله خود را بررسی و ارزیابی کند ضربات مهلت نمیدادند. از سازمانی که در محاصره دائمی یکی از قویترین پلیس‌های عالم بود چه انتظاری می توان داشت در این شکل از مبارزه هیچ چیز را نمی‌شد به فردا واگذاشت برای هیچیک از ما فردایی وجود نداشت سردرد امانم را بوریده بود تمام نقاط اتکا و اعتمادم به سازمان میرفت چون حبابی تو خالی و سوس ترکیده و به هوا برود خشمم را بر علی کوباندم این همه حساب کتاب تو ما رو کجا میبره رفیق علی با تحکم دامه داد رفیق اینجا یه سازمان سیاسیه سیاستم یعنی حساب و کتاب یعنی هر حرفی رو نباید بر زبون آورد هر فکری رو نباید بلند گفت سیاست توی این مملکت خشنه. فکر کردی ما اومدیم خونه خاله رفیق؟ تو دوچار رومانتیسمی زندگی واقعی با اون دنیای زیبا و پاک و منزهی که توی رومانا و داستانا خوندی با اون دنیای قهرمانی که توی رویات داری تفاوت داره. این بار نیما بود که وسط حرفش پرید. اگه رومانتیسم اینه که آدم دنبال یه چیز به قول تو پاک و منزه باشه، مبارزه ما اساسش رومانتیسمه آره، ما میخوایم یه جامعه پاک بسازیم. علی افروخته بر دوزانو نشست و میان حرف نیما دوید؟ نه این طور نیست مبارزه سیاسی توی هر شکلش همیشه با رمانتیسم بیگانه بوده تو مبارزه سیاسی باید واقبین بود بیژان جزنی رو بخون از اون واقبین تر پیدا نمیشه اگه قرار بود همه این حساب های امروز تو عمل کنن اصلا سازمان چریکی به وجود نمی اومد. اگه کسایی نبودن که دنبال یه دنیای پاک باشن این همه قهرمانی علیه فاشیسم شکل نمی گرفت. این همه قهرمانی تو ویتنام و فلسطین وجود نداشت. اگه رمانتیسم اینه که تو میگی این امتیاز که ما داریم نه نقطه ضعف. علی دیگر چیزی نگفت. بحث ما دیگر بحث نبود. زور آزمایی بود. آمیخته با خشم. نیما هم سکوت کرد. از اینکه می‌دیدم می فکرها و حرفهایم از دهان نیما خارج می شود لذت می بردم. ذهنم نیاز به استراحت داشت. نمیدانستم میان حرفهای امشب بر کدام یک درنگ کنم. فضاهای اتاق از بحثهای ما دم کرده بود. دلم هوای تازه می‌خواست. از فردا کتاب بیژن نبرد با دیکتاتوری شاه رو توی برنامه می گذاریم. علی بود که مانند همیشه برنامه فردا را از یاد نمیبرد از این خصوصیتش خوشم می آمد. هیچ مجادله ای با بومبست تمام شود. همیشه راهی به بحث بعدی می آفت. اما چرا کتاب بیژن؟ آیا می توانستیم جوابهای مان را در این کتاب بیابیم؟ شب از نگهبانی ماف شدم. علی پاس اول را داشت. دراز کشیدم اما خوابم نمی برد. از اینکه که به علی سخت گرفته بودم خود را سرزنش می کردم. دلم برایش سوخت بلند شدم و به او گفتم برو بخواب من خوابم نمیبره بره کاش شجاعتش را داشتم و میگفتم گفتم علی منظوری نداشتم از اینکه با تو تند حرف زدم گاهی حرف هایی می زدم که از خودم انتظار نداشتم یک سال قبل حتی به فکرم هم نمی رسید که زمانی اینگونه به رفیقم توهین کنم چه عشقی نصفت به رفقا و سازمان در من بود فکر می کردم که این عشق با پیوستن به سازمان پر رنگتر و بیشتر می شود. چقدر تغییر کرده بودم در این چند روزه چه اتفاقاتی رخ داده بود و چه بحث شده بود علی حق داشت به این جنبه های مبارزه هرگز فکر نکرده بودم به راه رو رفتم و بر پله نشستم خونکه هوا بر پوستم نشست. نیما را می دیدم که بازویش را بر پیشانی گذاشته است. میدانستم وقتی خیلی کلافه است این کار را می کند. شاید خواب به چشمان او هم نمی آمد. به چه فکر می کرد؟ چقدر مثل هم فکر می کردیم بدون گفتگویی از قبل؟ علی گفته بود که منزه طلبم، رومانتیکم، اینکه سازمان را بی و نقص می خواستم رومانتیسم بود؟ من نه نظریه پرداز بودم و نه تحلیلگر می مانند یک سرباز به با آنچه باورداشتم خدمت کنم آیا این رومانتیسم بود؟ اگر بود؟ چرا غلط بود؟ اگر خون ما می‌تواند خلق را آگاه و رها سازد پس بگذار رودخانه از آن جاری گردد مگه این شعار ما نبود؟ اگر این احساسات را نداشتم مگر می توانستم فدایی شوم. بدون عشقی خالص به سازمان از من چیزی باقی نمی ماند پدر بزرگم می گفت دختر جون دنبال سیاست نرو سیاست پدر مادر نداره با پیوستن به چریک ها میخواستم ثابت کنم که چریک ها از سرشت دیگری هستند چریک برای خودش چیزی نمی چریک حرف و عملش یکیست چریک با فدا کردن جان باور خود را به حرفی که میزند ثابت میکند علی میخواست که آدم دیگری شوم که واقع بین شوم کسی که نبودم نمیشد هم رمانتیک بود و هم واقع بین علی از این پهلو با آن پهلو شد او که برای تمام سوالها همیشه جوابی در چنته داشت حالا خوابش نبیبر شاید به گفته نیما میاندیشید نیما میان حرفایش گفته بود اگر ما اعتراض نکنیم مسئولیت به گردن همه ماست. خب نمیفهمیدم که چرا و چطور ما مسئول کاری بودیم که حتی روحمان هم از آن بیخبر بود و همه هم علیه آن بودیم